مرز پایان هستی ایستادم، به قفا می نگرم همه پیامبران و حکیمان و هنرمندان و شاعران تاریخ را از دور دست ها می بینم که پیشا پیش امت خیش ایستادند و از اینجا که منم سخن می گویند خاموش عشق را می بینم که بر سیماهای پاک و تافدهی که در اعماق مهگون تاریخ و اساطیر. تره شبهی را یافدند و قوقای دلها را که از حسرت اینجا که منم به درد آمدند و تقیان کردند و گروهی را که نگاه های کمسویشان از راه درازی که تا اینجا دارند نمیتوانند گذشت و در پهنه این بیابان امیغ از حیرت و نومیدی و نیاز جنون گرفتند و همچون سپند بر آتش در خویش میگدازند و تاب ندارند و گروههای اندک و بسیاری که در پی مردی از قوم که به بو راه را می از نقطههای دور و نزدیک زمین به راه افتادند و تند و آرام بر جاده مستقیم یا پیچا پیچ به راه افتادند و گروهی از تنهایان یان که همچون نیلوفر بر صفحه آب تنها با خویش نشستند و چشم در خویش دوختاند دل به آرزوی این سرزمین بسته اند و از شوق و رنج در خود محو میشوند و با یاد آن عشق می بازند و من که دیگر در آن دنیا همه چیزش را شناخته بودم هیچ بیراههای ناشناس در پیش پایم مرا به سرمنزلی مجهول نمیخواند به راه افتادم در هیچ منزلی بر سر راه درنگ نکردم هیچ دعوتی را نپذیرفتم امور هیچ یک مرا نفریفت که همه را میشناختم و آمدم و آمدم تا به دینجا رسیدم تا آن را یافتم همان نمیدانم چهی را که همه عمر مرا بیقرار خیش کرده بود همان نمیدانم کیی که همه چهره ها را در نگاهم بیگانه نموده بود همان نمیدانم کجایی که جهان را در دلم قربتی سیاه ساخت گفتند بیعت کن نکردم گفتند بمان نماندم گفتند بخواه نخواستم رنجم دادند اسیرم کردند بینامم کردند بدنامم کردند مجروهم کردند تا تسلیمم کنند و تسلیم نشدم تا رامم کنند رام نشدم تا بشوم نشدم تا در قربت مندگار شوم تا با شب خوب کنم همان ناشناسی که دلم را با او آشنا میافدم نگذاشت تا با این آشناها که دلم با آنها بیگانگی میکرد بمانم به راههای دیگری که به شهر و باغ و آبادی بود نرفتم راه اجدادم را دنبال کردم که جد بزرگم گفته بود که این راه ماست من آن را تا بد اینجا آمدم تو آن را دنبال کن و اونیز نیز همین را به پدرم گفته بود و پدرم همین را به من. آنها هیچ کدام نگفتند من از همهشان شنیدم. بعضیها با زندگی کردنشان حرف میزنند. و این بستی است پشت در پشت و گفته بودند که ما سالک این طریقیم که گم شده ما جز در این طریق نیست. و ما همه عمر را همه در جستجوی آن گذاشتیم و گذاشتیم و شما باید آن را همچنان دنبال کنید تا آن را بیابید و من نیز دنبال کردم و بر راه های دیگر نرفتم و در این تاریخ که بیش از یک قرن است که این سفر را آغاز کرده ایم من از رفتن باز نیستادم و نومید نگشتم و همچنان در جستجوی آن گام زدم، صبر کردم و یافتم. یافتم. اکنون راز این وصیت پشت در پشت که از اجداد خیش دارم بر من شده است و اکنون می‌دانم که جد بزرگ من که در اوج کمال و شهرت و حکمت ناگهان براشفت چرا برآشفت؟ و شهر را و مردم را رها کرد چرا رها کرد و به گوشه روستای آرام و دوری روی آورد چرا آورد و در خلبت انزوای خیش پنهان شد و از همه خلق دامن برچید و عمر را به سکوت و جستجو به پایان برد چرا برد چرا سکوت کرد چرا چنین کرد چرا آمد چه میخواست چه گم کرده بود و آن دیگری و آن دیگری و آن دیگری همه رفتند و جستند و گشتند و سر به خاک فرو کردند و دیگری راهش را دنبال کرد و رفت و جست و گشت و سر به خاک فرو برد و دیگری و من نیز راهشان را دنبال کردم و به فریبهای امروز زندگی نفریفتم. و استوار مندم و وفادار رفتم و جستم و شده یک قرن جستجوی نسلهای پیاپی خاندانم را که همه عمر و زندگی را به دنبالان گشتند یافتم و آن اکنون در دستهای من است، در چشمهای من است، در سینه من است، در عمق خلوت خیالات اتراگین من است، در روح من است، در نهان خانه قلب من است، در کنار من است در زبان من است در تنین آوای من است در برق نگاه‌های من است در لای انگشتان من است در نوک قلم من است در پردههای زیبای سخن من است در پس هر احساس من است در خم گردش چشم من است در تک تک سلول‌های مغز من است در خلوت من است در جمعیت من است در تنهایی پرگفتگوی شبهای من است در لحظه لحظه زندگی من است در دم هر دم زدن من است در شکفتن هر لبخند من است در خم هر اخم من است در ابهام هر سکوت من است در جلوه هر گفتن من است در دامن من است در گریبان من است در حلقوم من است در زیر پوست من است در زیر پلک من است در های چشم من است در گرمای تن من است، در سنگینی جسم من است، در استراب جان من است، در ثانیه های من و دقیقه های من و ساعت های من و روز ها و شب من و هفته های من و ماه های من و سال های من و جوانی من و کمال من و پیری من و تندرستی من و بیماری من و شادی من و غم من و امید من و یعس من و شکر من و شکایت من و حیات من و مرگ من و و آی همه جا هست همه جا به هر آوازی به هر سازی به هر نقمه چنگی که گوش می دهم، به امید شنیدن آوایی از اوست به هر رنگی که مینگرم در پی رنگی که یادآور آن معجزهای رنگین من است می گردم. هر سخنی را که میشنومم در جستجوی واژههای دلنوازی هستم که رمز گفتگوی من و اوست. هر داستانی را که میخوانم آنچه به داستان من و او همانند است میخواهم. هر عطری را که میبویم در هوای بوی خاطره معطر اویم. چه کسی این سخن علی را میفهمد؟ من آن را همکنون مییابم. آن را درباره خدا می گوید چه زیباست سخن گفتن علی در خدا چه کسی او را چون علی میشناسد؟ علی سراپا مملو از خداست سوخته آتش اوست گرم هوای اوست قرق یاد اوست من در هیچ چیز نمینگرم نگرم مگران که پیش از آن با آن و پس از آن او را می بینم چقدر راست میگوید چقدر همینطور است؟ نمیتوانم خوب حرف بزنم. این حالت از آن هر حقیقتی است صفت ویژه حقیقت است. من همه چیز را همه کس را می بینم و هیچگاه چهره او از پرده چشمم غیبت نمی کند. در همه چیز در همه کس با همه چیز با همه کس بی همه چیز بی همه کس او را می بینم. چشمم را که می در چهره او می گشایم. چشمم را که میبندم در چهره او می گویی بر روی همه ی بر روی همه ی صورتها، بر روی هوا، بر روی آسمان، بر روی شب، بر روی آفتاب، بر روی ماه، بر روی تک تک هر ستارهای بر روی برق هر شب نمی، ای برگی، قامت درختی، ناز شاخی، گلبرگی بر روی آب، بر روی سبزه بر روی هر صفحه بر روی هر سنگ هر خاک، هر قلم هر کتاب، هر دفتر هر کاغذ، هر رنگ چهره او او را رسم کردند چهره او را گویی بر پرده چشمم نقش کردند او در عمق نگاه هم جاویدان هست و چونین هست که نگاهم بر هرچه و هر که می افتد او را می بیند چهره او در عمق فهمم هست این است که هر کتابی که می او را میفهمم. تاریخ می و در همان حال او را هم میفهمم. به سخن کسی گوش می دهم و در همان حال او را هم می شنوم مخاطبها را می نگرم و در همان حال او را می بینم در سیمای های سیمای او نمودارتر است در کنار متولیم به او نزدیک ترم. شادیهایم هم که همچون برق میگذرد سیمای او را روشن می کندند. غمهایم که پیاپی پی به مبارک بادم میآیند و هرگز ترکم نمیکنند و هر لحظه مرا سنگین تر در خود می فشرند مرا به او محتاج تر می امید او را پیش نظرم میکشاند. جس مرا پیش او میکشاند، تنین نوازشگر سخنش فضای آفرینش را پر کرده است. آن را می شنوم، در سکوت می شنوم، در هیاهو می شنوم، کوهها، دیوارها، فرسنگ ها، ستاره ها، ماه، خورشید، آدمها، درختها، زمین آسمان هرچه خدا ساخته است، همه شیشه های نازو که بیرنگند. و من از ورای آنها هموار او را می بینم او هیچگاه قایب نیست همه اشیاء همه اشخاص پنجره که به سوی او گشودند من در کنار هر ای او را می نگرم. او را تماشا می کنم در برابر آینه که می خود را که در برابر آینه ایستاده هم نمی بینم از آن وحشت دارم خود را در چشمان او مینگرم و در همین حال او را هم می بینم و در همین حال او را می بینم که مرا مینگرد و در همین حال دلم چنان بیحال حال می شود که کنار آینه می نشینم. سرم را به روی آینه خم می کنم. صورتم را بر صورت آینه می گذارم. فشار می دهم که نزدیک تر پیشتر آیم و با کنچکاوی و شوق و لرز در عمق چشمهایم می نگرم. چشمهایم را باز باز می کنم تا خوبتر ببینم. در چشمهایم خیره می شوم و می جویم و می گردم. آیا تصویر او را در پرده مردمک چشمهایم نمی توانم دید؟ نه نمی توانم دید. عشق؟ هیچگاه محلت نداده است اما او را در همین حال میبینم خود او را در همین حال که میبینم که در مردمک چشمم نیست میبینم همیشه همینطور است همیشه میگردم و او هیچ جا نیست نمیدانم کجاست؟ نمیدانم خانهش کجاست. نمیدانم کجا رفته است. نمیدانم چه می کند؟ نمیدانم با کیست؟ نمیدانم در این شهر هست یا نیست در این مملکت هست یا نیست در این دنیا هست یا نیست. او همیشه نیست و او را همیشه میبینم. او غیر از همه چیز است. غیر از همه کس است. این چیزها و این کسها همیشه هستند و هیچگاه آنها را نمی بینم و او هیچگاه نیست و همیشه او را می بینم. تنها غذا میخورم و او همیشه کنار سفره من هست دستهای زیبای او را می بینم که بر روی بشقا به غذای من می آیند و می روند. صدای خندش، حرف زدنش، صدای جویدن غذایش آشامیدن آبش، پوست کردن سی را کنار خود می شنوم. همیشه در پشت میز کارم با سینی قضایم هم قضای من است. او همیشه از همان کاسه از همان بشقاب از همان دیس و از همان لیوان من می خورد می آش آمد. با همان قاشق من غذا برمی گاه قاشقی را که من پر کردم و برداشتم در دهان او می بینم و گاه قاشقی را که او پر کرده و برداشته در دهان خود میابم گاه لیوان آب یا شیر را که به لبهایم میگذارم او میاش آمد و گاه لیوان شیر یا آب را که او پر کرده من لای لبهای خودم میبینم گاه سیگارم را که به لب میگذارم او را می بینم که کپریت می کشد و گاه سیگارم را که لای انگشتانم به قیز می فشارم ناله او را میشنوم که از درد انگشتانش به فقان میآید گاه او را در اتاق کارم و روبه رویم نشسته می بینم که می خواهد بماند و بیقرار رفتن است. گاه او را در کنار دستم می آبم که برایم نوشته ای را می خاند. از آنها که بی او هم پیش از آن ام از آنها که من به او نوشته که چه با آمزه میخواند و یا از آنها که او نوشته است و چه با شرم میخواند. گاه صدایش بلندتر می شود و آن هنگامی است که به جاهایی می رسد که متهم به نفهمیدن شده بوده است و با چه جدیت و شور گل آمیز و اتاب آمیزی، توضیح می‌دهد و کمی هم عصبانی و تند و من خودم را می بینم که با چه کیفی سیگار را پک میزنم و لبخند خاطر جمع و نشع آوری میزنم و رندانه سکوت می‌کنم و باز میپرسد و از من اعتراف میخواد و من باز جواب سر بالای چند پهلو می دهم و باز عصبانیاش می‌کنم و عصبانی تر و باز کیف می کنم و کیفدم. و او باز خشمگین تر می شود و با چشمان تند و سرزن شامیزی پر از شکایت و تشر در من خیره می شود و من با چشمان آرام و پرخاطری او را می و می و می و با خود در شگفتم که دل آدمی زاد مگر چقدر تا کجا استعداد دوست داشتن داره گاه او به صورت یک گل در نظرم مجسم می شود گلی از گلهایی هایی که در این دنیا نیست و من در میان همه گل ها و رنگ ها و عطرهای های و گلخانه ها و مزرعه ها او را می بینم که مرا میشناسد تا میرسم در میان گلهای دیگر که همه را گل های کاغذی یا پلاستیکی یا پارچه‌ای مییابم او را میبینم که در برابرم می شکفد. باز می شود، لبخند می زند، با عطر گویایی که در هوای پیرامون من منتشر می کند، با من حرف می زند، از آشنایی می گوید و خیشاوندی و پیمان و پیوند، او را همه وقت می بینم، همه جا در همه چیز. در جلوه زیبای سپیددم که با سرانگشت گرم و لطیفش چهره خسته و خوابالود و معیوسم را مینوازد و من چشم در چشم افق در انتظار سرزدن او میمانم و در لبخند سحر او را می بینم که از ورای قله مشرق به سراغ من میآید و گاه در قامت زیبای شام که نامش نام من است و هستی‌اش موم نرم سرنگشتان من است و زبانش آتش سوزان سامان من است و پرتوبش روشنگر شبهای ساکت و تنهای من است و اشکش تسلیت بخش قمهای عشق خیز من است و گاه او را در اندام قلمم میابم که به جیب بغلم میگذارمش به فقان می آید و سرش را به گوشه چپ بر روی قلبم می گذارد و می که بنویس که بنویس و مرا تا از جمع به گوشه آرامی نبرد و بر روی دفترم خم نکند دست از ناله و فریاد بر نمی و چون او را در لاینگشتانم می گذارم از فرمان من سر می پیچد و هرچه می خواهد می و من تماشاچی مبهوت اویم و خواننده گیج و پریشان نوشتههایم نوشتههایش گاه او را در سیمای خونین و قمالود غروب می بینم که از شب و ودا سخن می گوید و از تلخی قربت و حراس تنهایی و مصیبت جدایی که سرنوشت محتوم طلوع ماست، و سرانجام ناگزیر داستان ماست. که باید آنچه را یافده گم کنیم که صاحب دارد. و آنچه را بسته بکسلیم که مانع دارد. و آنچه را میفهمیم نفهمیم که مشروع نیست. آنچه را حس میکنیم حس نکنیم که معقول نیست. آنچه را که مرسوم نیست. که غروب سرنوشت قمنگیز طلوع ماست. که مغرب میعادگاه عشق ماست که شب فردای سیاه و هراس حیات ماست و من غروب او را مینگرم و او را مینگرم که از قله بلند مغرب بالا میرود و چهرش از رنج جدایی خونین است و سکوتش از درد قربت رقت و من روی در روی مغربی استادم و آخرین لحظات وداع تلخ و خونین او را مینگرم و درد ناکانه احساس می کنم که او میرود و من بر روی این زمین در زیر این آسمان و در صحرای حول این شب باز تنها می مانم و گاه غروب که پایان گرفت و شب که بر آفاق چیره شد و من ماندم و شب و بی کسی و تنهایی ناگاه او را میبینم که از پس پرده سیاه شب در برابرم نمودار شد و به هزار گونه و هزاران گونه نمودار شد او را نه همچون آن به محزون در یک ستاره بلکه در هر ستاره میبینم در دل سیاه شب هر ستاره که سر میزند اوست چشمک که هر ستاری نگاه دزدانه اوست که مرا پیغام می دهد که در زمین تنها نیستی. که مرا غروب نیست، مرا با تو جدایی نیست، مرا بی تو زندگانی نیست، مرا بی تو سرنوشتی نیست، سرگذشتی نیست. هر ستاری مرا مژده است که او هست، که اوست، که او خورشید بی من است. که او وسال بی فراق من است که او حضور بی غیبت من است که او همیشه هست که او همه جا هست که او در هرچه در هر که هست هست او در دم هر نفس من است در کوبه هر نبز من است طعم هر تعامم اوست شهد هر شرابم اوست عطر هر یاسی نجوای اوست وزش هر نسیمی نوازش اوست قطره هر شب نمی عشق اوست آشقی رنگ سمند اوست و دعا دست نیاز به سوی اوست آسمان پرتوبی از سردر اوست مخمل ابر، گل پیکر اوست ساغه صبح برو بالایش نقمه وحی خدا آوایش آرزو ترهی از اندامش مجده است ز پیغامش زندگی رایه پیرهنش جان من تشنه نوش دهنش و گاه او را در سیمای کتاب میبینم هر کتابی را که میگوشایم او را میابم او در هر کتابی پنهان است در هر صفحه او هست در خط خط هر صفحه هست در کلمه کلمه هر سطر هست هر کلمه اوست هر نقطه اوست هر سطر اوست هر شعر اوست هر نصر اوست. کتابی که او نباشد نیست. کلمهی که او نباشد نیست. هرچرا میخوانم او را خاندم. هرچرا میفهمم میفهمم او را فهمیدم. هرچرا نمیفهمم نمیفهمم او نبوده است. هر شعری اوست که سرودند. هر سخنی اوست که گفتند. هر موسیقی اوست که خاندند. گاه او را می بینم گاه او را می گاه او را می گاه او را می چشم گاه او را می وزن می کنم گاه او را حس می کنم گاه او را احساس می کنم گاه او را درک می کنم گاه او را لمس می کنم گاه او را میابم که مرا مملو خیش کرده است. گاه خود را سراهی می بینم که از او پر شرابم گاه دلم را چشم ساری میابم که او در آن میجوشد گاه خود را قندیلی میبینم که او در من میسوزد میگدازد گرمم میکند داغم میکند بیتاقتم میکند به فقانم میآورد همچون سپند بر آتش از جامی پراندم از خانه میراندم به خیابانها و میدانهای خلوت خلوت میکشاندم و دریغا که نمیدانم چه بگویم دیقا که نمیدانند چه میگویم خیابان خلوت را هم نمیفهمند. حلاج شهرم که کسی نمیداند که زبانم چیست که دردم چیست که عشقم چیست که دینم چیست که زندگیم چیست که جنونم چیست که فقانم چیست که سکوتم چیست. ای دنیای ای که به تازگی به تو رسیدم، تو را پیش از این ندیده بودم، پیش از این دور از تو در اقلیم دیگری میزیستم، من از کشور دیگری آمدم، اما با کوه و دشت تو، با رودها و دریاچه و مزارع سرسبز و باقهای خرم و پرندگان رنگین و زیبای تو، با آسمان و ماه و خورشید و ستارگان تو، آشنایم سخت آشنایم آنها نیز با دل من آشنایند من همه عمر به دنبال تو میگشتم من در روح اجدادم تو را میجستم من آنان را در این راه میراندم من آنها را به سوی تو میکشاندم من اکنون کاشف سرزمین تازه نیستم من وطنم را یافتم من در غربت زادم پدرانم همه در قربت زادند و زیستند و مردند و هرگز با قربت خونه کردند، هرگز با مردم سرزمین بیگانه نساختند، دل نبستند، همواره در حسرت میهن خیش سرزمین روح و سرشت و نژاد خیش بودند. یاد او را لحظه ای از یاد نبردند و من نیز با باخهای سبز و سرخ سرزمین بیگانه انس نبستم. مرا نفریفتند همچنان استوار و صبور دل به جستجوی سالیان دراز بستم و تو را یافتم تو را ای کشور من ای آشیانه من ای که از آب و گل توست جان من و تن من ای که در تو من آواره نخواهم بود در دامن مهربان تو آرام خواهم شد در کنار تو پریشانی و قربت و بیگانگی را از یاد خواهم برد نمیدانی که چه نیازی به گم شدن دارم به نیست شدن دارم دوست دارم در پیچ و خم دشتهای ناپیدای تو گم شوم در عمق دریاهای اسرارآمیز تو غرق شوم در قلب صحراهای خیالانگیز تو محف شوم. دردهای کهنم را در زیر آسمان تو به فریاد سردهم از درونم بیرون ریزم اغده های بیرحم گریه را که در چنگال های است و به خفقانم آورده است در دامان نبازش های عزیز تو بکشایم عشقهای بیتابم را که عمری در پس پرده سیاه غرور زندانی بودند در کف دستهای خوب تو رها سازم